تکایت، عاملی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند، بیخبر از قول حکیمان که گفتهاند هر که خدای را از و بیازارد تا دل خلقی به دست دارد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برارد، آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل درد مند. سر جمره حیوانات گوگند که شیر است و کمترین جانوران خر و به اتفاق خر بار به که شیر مردم در. مسکین خر اگر چه بی است چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار بهزادمیان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر قافل. ملک را زمایم اخلاق او به قراین معلوم شد. در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجوگید. خواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکوگی آوردند که یکی از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تعمل کرد و گفت نهر که قوت بازوی و منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردمان به گزا. توان به حرب فرو بردن استخان دروشت ولی شکم بدرد چون بگی در ناف نماند ستمکار روزگار، بماند بر او لعنت پایدا